رادیو همیشه تلاها عیارشان بالا نیست یا شاید اصلا تلا نیستند اما چون زردند طلا مینامندشان شبیه بعضی از گل‌های روز فقط از یک نمونهش گلاب می‌گیرند ما بقیهش می شود گاوها و بزها که در نهایت بشود کودی بر پای درختی. و همین اصلها و فرها هستند که می سازند را. قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. و این مصداق بارز تلاست. نه طلایی که بر گوش و گردن می آویزند. تلایی از جنس زن، نزنی به ایار طلا زنی به رنگ طلا مثل شعری بیقافیه از ذهن شاعری بیاتفه. به عالم فسونی ای که ز تو ماند نه کوی فخری جون فخر و زمان جون درو وا کن الانی که این زنای فضول پیداشون شه بگن صدا جووناشونو رو از را به در میکنه صدای تلا سنگار بفرما بفرما تو تلا جون خوش اومدی؟ صداد کوچه رو ورداشته ملت که کوچه شنافتن ندارن باز خاطر همین چشت میزنن راستش داشتم این جوها رو جمع جور میکردم یه دلم گرفت. این آواز خانم گلم همیشه موقعی کار زمزمه میکرد یه وقتایی که نشسته بود و لباسایی رنگی و سیاه شسته رو از هم سبا میکرد میرفت تو فکر خیره نگاش میکردم و میگفتم کجاهایی یه آهی میکشید و میگفت آدما با خاطرات قاتل خودشون میشن مثل امروز من تقصیر این کفشای قرمزه که امروز بعد دو سال پوشیدم منو برد اون روزی که میخواستم برم فرنگ تا یه مدتی از همه چی دورشم حالا که برگشتم میبینم همه چی سر جوش هست ولی من دیگه اونجاها نیستم یعنی یعنی نمیخوان که باشم بیچاره خانم گل اونم این بسط مونده حیرون ترفندهای زنونشم نتیجه نداشته مگه کسی درعت داره رو حرف جناب سرهنگ حرف بیاره بسته نداره که جونم سرهنگ مرقش یه پا داره چون مرده غرور داره من که میگم برو دیدنشون مگه در روز نیستن با یه تاکسی میشه رفت خواستی منم همرات میام دلم پوسید تو این چار دیواری یا چند وقت فقط در دیواره این خونه رو دیدم و از سر کوچه تا تن خیابون پشتی رفتم که گرما بداره اوه، اصلا همون بهتر که قم بوز داری نه قم بوزگاله من که از دست این مونس ولد چموش هم خسته شدم پر روزا دیدم داره سنگ میذاره تو جیباش دست اجه نره از پشت بسته من که همسن و سالاش بودم پخت و پذ و و رو روب می کردم و بیگم صدای آواز من بهونه بود انگار درد دلای تو هم کم نیست چی بگم فخر و جون. راستش یا امامزاد حسن صدای شکستن شیشه بود ماما ماما یکم پول بده سود بده لازم زور زور لازمش دارم خاک به سرم دختره چه سفید؟ در خونه واضح همینجوری میچپی تو؟ سلامت کو؟ این چه صدای بود تو کوچه؟ چه آتیشی سوزوندی که اینجور جلز ولز میکنی ها؟ تقصیر من چیه؟ حسن گفت به زنگ بزنیم ننه کف در خونهشون رو به و پر بدیم بعدش میتونیم بریم چیزیشون رو بیاریم پایین بسینیم بهشون بازی کنیم من بشم هم اونم و بشه باباشون ولی انگاه حلم کرد سنگ اوزین که بخوره به کفت خود تو شیشه خاک بگورم سنگه میخور تو چش و چالش کورش میکرد من جواب مهینو چی میدادم حالا اومدی واسه شکستن شیشه مردم از ان دست خوش میخوای باید سهلان بهت میدم اصلا فهدا که آقاچونم بیاد ازش میگیرم ای بابا تلا ولش کن بچه هست بچهگیش بچگیش این شیطنت ها بیا بیا چایی ریختم بخور حالا بعدش میری به اوستا قاسم شیشه بر میگی شیشه نو بندازه واسه پنجره مهین از مهینم دل میکنی اونم یه بچه داره مثل خودت حرفتو میفهمه زلم کرده این دختره اینقدر که همش خراب کاری میکنه اگه پسر بود میخواست چه شرری بشه ننه ما که صبح تا شمزیر مرحفهی کهنش گوشه اتاق دراز میکشید بعضی وقتا فقط دستشو از زیر پتو بیرون می همین جوری که چشماشو تنگ میکرد و دستی به موهای پریشونش میکشید گوشه پردر رو کنار میزد تا ببینه شبی یا روز بعضی وقتا هم که حالش بهتر بود این تا دستی به سرگوش اسبایی که آوردهن برای نل زدن توی اسب میکشید آخرا یادش نمیومد چند تا دختر داره چند باری هم منو مراد صدا میزد منم میگفتم موراد هنوز نیومده کاری داری به من بگو حالا من که چشم از این دختر بر نمی دارم اینجوری چموش در اومده. گله نکن طلا مادر بودن صبر و حوصله می خواد. خودت هم باید پا به پاش بزرگ شی. اون قب بزرگ که غم و شادی و دقدق و آینده یکی دیگرم بتونی تو خودت جا بدی. منم فکر میکردم از شلوغی و سر و صدای بچه ها و درد سراشون اما یه روز همون اوایل که اومده بودم تو این کوچه مهین با یه بشخاب از کشک بادمجونش اومد دیدنم حسینم همونجوری که گوشه دامن مامانش رو گرفته بود مدام میگفت خاله بیا خونمون لاک پشتم رو بهت نشون بدم اونجا بود که فهمیدم صدایی بچه و شیطنتاش، یه چیزهایی رو تو وجودم بیدار میکنه که تا حالا فکر میکردم ندارمشون. یه دلم خواست که یه بچه با کله بیمود دست و پای کوچولو و چشمای درشت تو بغلم شیر بخوره و من همون جوری که انگشتای کوچولش دور انگشتم گره خورده وزش قش کنم و خوشبختی از سر و کولم بالا بره. یه بچه میتونه رنگ بده به دنیای سیاه سفید ما آدم بزرگا من که مثل تو نمیتونم حرف بزنم. فقط میتونم بشینم و گوش کنم. لابو چون شوهر خدا بیا عجل اجل مهلتش نداد بچه دار نشدی. ها فعلا برو به داد محین و شیشه شکسته پنجرش برس که واجب تره. مخواس حرفای منم زیاده. آخ خاک به سرم پاک یادم رفته بود ای زلیل شی دختر که فقط باید بکشم از دستت برم برم از دل مهین درارم تا فردا که آقایش رحمت اومد نگه همش گل شکایت میشنف از در همسایه این کوچه دختر دروازغار و دختر دریا کنار. هر دو اریانند اما این کجا و آن کجا. بوف ویران مکان و بلبل جنت مکان. هر دو میخانند اما این کجا و آن کجا. شاعر دوزاری از بحر مقام و در زلف یار. هر دو حیرانند. و آن کجا از غذا روز چند روز ارکیده ها هر فصل سال هر دو میمانند، اما این کجا و آن کجا روی رسوایان سیاه و خاله محرویان سیاه هر دو نقل مجلس و نقل زبانند اما این کجا و آن کجا چکمی شاه خلان و چکمی شاه جهان هر دو از چرمند اما این کجا و آن کجا؟ یابوی بی اصل و ریشه اصب عرابی به میدان هر دو میتازند اما این کجا و آن کجا؟ گاله باز حسود و قنچه لبهای یا هر دو میخندند اما این کجا آن کجا بود؟ بحور دل کش رسید و دل به جا رادیو کوچش از به نظر من رنگ آبی تنها رنگیه که آدم میتونه بهش اعتماد کنه. تنها رنگیه که با همه وجود خودش بهت اطمینان میده که میتونی ازش آرامش بگیری. و همیشه رنگ‌های آبی با پیشوند خاص اومدن. اینکه بخوایم با حوی حروفش بازی کنیم. و همه بزرگی ها به رنگ آبی میشه مثل رنگ چشمای خانومی رنگ دریای شما رنگ دلهای مردم شما به رنگ آرامش به رنگ آسمون به رنگ دل امیر ارسلان مادر داری چی کار میکنی؟ نمیگه حالت بد میشه؟ بیا بیا برو بشین بغل بسات سماور و چایی الاناس که آقات بیاد <تصفح> چقدر گرمه دل و نشین خانجون من خوبم اگه این روزو همش بخوام بشینم تنم کرخ میشه اون روز فخر و زمان میگفت آها رسید شما که یه سر رفتیم بیرون اهل پسر کبلوی اومد گفت که بار نساجا خورده به گیر و گور امیر خان خودش امروز میره کاشون راستوریس کنه کارا رو. باید هم تا الان رفته باشه. ای بابا چه بی خبر؟ اینم به ساقاش خدا بیا مرزه. همش نگفته قیب میشه. نمیگه تو دل من مادر رخته چرک میشورن آخه. حالا ویل کن دیگه اونجا رو مادر. بیا بشی. حالا که شرطم اینجا نیست امانتی دستم. بیا مادر بیا. چشم خانجون چشم. چایی رنگ بریزم برای عروس گلم که تشنگیش رفشه تو این چله گرمو. دست شما درد نکنه. <سنح> <سنح> هی، یادش بخیر. چند سال پیش که اومدیم تو این کوچه. سلام خاله ها. بوی، سلام برو ماهت خاله. بیا ببینم چه کار خوبی کردی اومدی. بیا مادر کدلمون دلمون پوسید تو این چار دیواری. بیا شاید توی یکم حالمون عوض کنی. حسن مادر چای میخوری؟ چای؟ آره اش... نه نمیخور <تصفيق> بچه همیشه انقصد شیرینه که قند و نبات خونه میشه آره مادر داشتم میگونم یالله یالله ساب خونه ای بابا حالا اگه تونستم حرفمو بزنم ای این که امیره خونه؟ یا الله سلام خاتون بزرگه سلام محروس خاتون سلام مادر خسته نباشی تو مگر الان نباید تو رای کاشون باشی ناراحتی خاتون اگه ناراحتی برم و وی گل بگیسه کی ناراحت مادر مرد خونمونی هر خونه یه صاب داره صاب خونه توی ننه نگین اینجوری تو رو خدا جون. تا هستی و سایت رو سر من و خانومی و این خونه است در بس مخلصتی این خونه که هیچی، کل زندگی من برا شماست. آره مادر جون، امیر ارسلان خان راست میگه. ایشالا که 120 سال سایتون رو سر ما باشه. امو امو بیشتر یعنی چند سال؟ اه، حسین، تو همین جایی وروجه 120، بذار بگم به 120 سال یعنی خیلی سال، اه هر وقت بزرگ شدی خودت میفهمی چقدره میشه الان بجین وای مادر این بچه الان چه ای دارن چیز میزیاد بگیرن ما هم بچه بودیم این هم بچن. اگه دیگه کسی نمیاد تو این خونه بگم یادت چی افتادم نه دیگه خانجون بگینی شاله که تا آخر حرفتونم این حسین وروجک دستگل به آب نمیده دست و مجید به آب بیدن <تصفيق> آره دیگه تو و مونست تو این کوچه همش دست گل به آب میدیم الهی به امید تو اگه باد و بارون نیاد این دفعه من حرفمو بزنم چند سال پیش که اومدیم تو این خونه امیر ارسلان تازه حجره آقاشو را انداخته بود خدا راضی باشه از داخت. کلی کمکمون کرد و خود کبلایی خدا بهش آفیت بده نزاش آب تو دلمون تکون بخوره آره یادش به خیر اون روزا این حیات و پر گل و گلدون و دار و درخت کردم. من که نیستم همیشه خونه. این گلا می شدن سنگ سبورت. شنی سبور یعنی چی؟ حسین خاله بعدم برات میگم. یه وقتی با مونس بیاین اینجا با هم براتون میگم باشه. این بچه شر و شورم بزرگ بشن چی میشن؟ آره مادر. بعدن که تو اومدی این خونه به جو صدای زمزمه من و این گلا صدای خنده تو امیر ارسلانم هم, هم داره ایشالله به حق امام تا چند وقتی که صدای بچه تونم میاد ایشالله خانجون اه؟ ها دست <تصفيق> دستگالا اینجوری به آب میدنم و. من به تو دو دونهای مامانو من نمیزنم آره معلومه اب نداره مادر فدای سرش بزا بشگنه چیزی که شکستنیه میشکنه. بعد مراقب باشیم دلمون نشکنه. جیفه دنیا که ارزش نداره. رفیق گفت مهین، خانجون به نظرتون الان مهین میدونه حسین اینجاست یا باز داره دنبالش میگرده؟ والا چی بگم مادر؟ این پسر انقدی که آتیش میسوزونه کسی نمیدونه از کجا میزنه از حسین. کجا در میاد. حسین کجا رفتی بابا؟ من داشتم من دست من اینجا بودم ها. از دست تو برو خاله برو الان مهین بند خدا حلاک میشه خدافش خدافش میبینین چه دلی از احال یه برده راستی خاتون من یه ساعت دیگه با پسر کبلایی را میفتم سمت کاشون اهل و ایال و دست شما سپردم که بزرگ توکل به خدا مادر بچه که بیاد تو زندگی دیگه مال خودت نیستی یک کسی رو داری که همه وجودت همیشه براش نگران میشه. بچه نعمت مادر شادی خونه است. تو مراقب خودت با شیاده گار حاج نصرت. ایمان تعریف شده از یکی شدن قدرت مردانه و ناز زنانه و ایمان یعنی رسیدن به غیر ممکنها مجسم کردن آن چیزی که در رویایت بود و اگر روزی رویایت واقعی شود ندای سربلندی سرخواهی داد ایمان یعنی تلاش برای دست یافتن به تمام آرزوهای دست نیافتنیت و نجوا کردنشان در گوش دلت ایمان است که اکسیر تکاپوی روح و جواره آدمی می شود تا رویایی زرین و گنجی عظیم بسازد گفته می شود که نابرد رنج گنج میسر نمی شود بیشمارند انسانهایی که رنج بسیار بردند بیان که گنج را دیده باشند ایمان یعنی بدانی گنجی هست حتی اگر برای دیدنش بر روی چشمانت پرده یفکنده باشند همانطور که شاعر گوید با این همه آن رنج شما گنج شما باد افسوس که بر گنج شما پرد شمایید مهار دل کاش رسید و دل به جا نباشد مهار دل رسید و دل به جا نباشد از اون که دل بردمی به فکر ما نباشد از اون که دل بردمی به فکر ما نباشد بر دراکته به و رادیو کوچه آخرین روز از ماه وسطی زمسون بود نه قم بود نه برف نه سرما بود نه جنگ سنی هم نداشتم تازه فهمیده بودم دست چپ و راست چیه که یه روز صبح ناشتا حیدر زفرونچی آقا جونم گفت آدم‌ها مرد‌ها رو خاک نمی‌کنن در اصل می‌کارنشون چون یه روز قرار همه از زیر خاک در بیاییم شاپیش نکشیده ای در زعفرانی کاشته شد آدم بزرگ هیچ وقت نه صداشون محف میشه نه حرفاشون همیشه بیخ گوشت میمونن آدم بزرگ حرفاشون میشه کتیبه و سینه به سینه و نسل به نسل میچرخه از حرفشون آدم بزرگتر ساخته میشه از حرفشون، آدمای بزرگ تربیت می‌کنند. از حرفشون میشن یه تن، میشن یه من، میشن وطن. وطن یه اسمه، اما تا عشق نداشته باشی، نمیتونی به زبون بیاری. وطن میتونه هویت باشه میتونه ناموس باشه میتونه اسم مردی باشه که کاشته شد تا از سمرش مردا و زنای قدم بردارن برای نگه داشتن و پرستیدنش وطن اگه نباشه آدم سرگردون میشه حتی اگه باشه ولی ازت دور باشه فیر به پیغمبر ما هم همسن این بچه بودیم کجا اینقدر در و دیوار بالا می رفتیم و از بابا ننمون سوال می کردیم دو تا سوال که می کردیم سوال سوم همچین نگامو می که پامون خود به خود جفت می شد جلو چشوش حالا یک کلون به این بچه میگم سیاست و مبارزه شیکم آدم و سیر نمیکنه از هم سوال میکنه مشکلش کجاست. داخه بچه تو اصلا میدونی مشکل چیه؟ تو این سن هنوز که هنوزه دو تقیب میخوریم که بخوابیم خواب از سرمون میپره. میریم قعب ترک های اصلان رو میخوریم که خوابمون نبره خوابمون میگیره. بعد میخواد تو این مملکت مبارزه کنه. آخه یکی نیست به این بچه بگه مشکل میدونی کجاست. مشکل دوغه دوق که تو نمیدونی چیه یه صداهایی هستند که زنده ترین موسیقی عالم هستین مثل صدای آب صدای مرگ حق مثل صدای صدای نفسهایی زیباتری موجود خلقت برای یه پدر صدای قلب یه دختر دختری که از وجود خودته مثل صدای قلب ایران که برای وطن میتپه میدونم شیشم متوسطه بودم یا پنجم اما یه روز از در زب فرونجی بد تو خودش بود صدام زد گفت وطن شاخه کام تیز شدن که ای داده ویداد حتما کسی راپورت داده که من و بچه ما سیگار هیچی نگفتم یعنی خودمو زدم به کوچه چپ که یعنی هیچ چی نشدفتم بلندتر صدام زد وطن سر را دو تخت ورد رو بیار تو خونه ما دو تا تخت نرد بود یه تخت نرد بود که کادوی سیاه هندی بود و یه تخت نردم بود که به شاهباسی معروف بود و هیچ وقت نفهمیدم فرق تخت شاهباسی و با اون یکی تخت چی بود که وقتی یه در زفرانچی توپش پر بود میگفت تخت شاهباسی رو بیارم خودش میگفت تا سایی تخت و عباسی خوش دست زن. تا حالشون میدهی شیشو بش رو شاخشه. ردخور نداره. راست میگفت. تختره که بردن پیشش تا سوکنداخ به طرفتال این شیشو بش آورد چایشو یه هرد کشید و سیگارشو با خیال راحت چاقید و بی مقدمه گفت دختر خیلی خوبه. آدم باز دختر داشته باشه. دختر که داشته باشی پسر واسد میاره. اون وقت قصه دیدن پسری که کپکی کارش انجام میده با دیدن دختر یر به یر در میشه دخترم که به دنیا اومد اسمشو گذاشتم ایران که اگه این پسر آدم نشد با دیدن ایران دلم قرص بشه که هنو یکی حک آدمه آخه اگه آقام میفهمید امروز تو دروازه دولا آژان و قپونی برد نظمیه. حسابم با که کاتبین بود تنان شانسی که آوردم از مغزم استفاده کردم <تصفح> یادم توی یکی از کتابا خونده بودم اگه دیدی جایی گیر کردین از مغزتون استفاده کنین خودتونو بزرگتر از اونا ببینین خب منم همین کارو کردم تا ازم پرسیدن اسم و شهرت گلومو صاف کردم و گفتم من هیدر هستم فرزند وطن نوه هیدر آشق ایران کشته فخر و زمان و دوستدار شازده یه تلایی هم هستش که اونام حرفم رو قد و گفتم برو گم شد تا نفرست آباد خب باید چیکا میکردم یا حرف کتاب گوچ میکردم یا دست رو دست میذاشتم آقا ما احضار کنن نزمیه من دو چیکر ساخته ام جوش بابا جان یکی یه بول خروز ماما جان یکی یه بول خروز <متصفح> آقا جون که بعضی وقت از دسته هیده جشی میشه میره جلال آینه میگه از خونی کتاب هیچگی هیده از آفرونچی نمیشه کتابو نبست بخونی بس بخوریش وقتی برق به برقشو خوردی اون موقع میشه آقا بزرگت هیده از آفرونچی اما خب آقا داداش من یکشش دره یکشش در بازه. یه شب خودم دیدم hey, در رفته بود تو زیر زمین داشت کتاباشو دا میخور پرداشم از حال جاد از شریم عجب دنیایی داری یه روز حیدر زعفرونچی بزرگ بازار اسمی فامیل آقا جون من میشه رو صندلیش و سیگارش و و وقتی آتیشش می کرد شروع می کرد به عرف زدن الان هیدر چی شده جای من من شدم آقام کاش یه روز هیدر رو صداش کنم بیاد بشین کنارم و بهش بگم از اول اینجوری نبودیم که چند سال گذشت از بار, بار افتادیم تو چاله بلند شدیم خودمونو تکندیم شونهای همو تکندیم فشار دادیم همو بغل کردیم همو بخشیدیم با هم نصف شبا خیره به سخت سیگار کشیدیم تو دلمون همو دوست داشتیم زخم شدیم همو خوشحال کردیم از هم بدمون اومد دلمون واسه هم تنگ شد تا شدیم این تا شدیم این تا شدیم این تا شدی می می گفت زنده بودن حرکتی است افقی از گهواره تا گور اما زندگی کردن حرکتی است عمودی از فرش تا عرش که فقط مرد می و بزرگتری اینگونه سرود ماز بالایی و بالا می روی. ماز دریاییم و دریا می کشتی نوهیم و در طوفان روح لاجرم جرم بی و بی پا می رویم همچون موج از خود برآوردیم سر باز هم در خود تماشا می رویم همت عالی است در سرهای ما از علا تا رب اعلا می‌روید تا رب اعلا می‌روید تا رب دل چش را سی دل به جان نباشد مهار دل چش را سی دل به جان نباشد اون که دل بردمی به فکر ما نباشه از که دل بردم به فکر ما نباشه سوطام بول بول رخت گل به خان دمیگو sin کوچه شنسته عربه ساعت دو نیمی شب نشون میده به رسم جون شبا فانوس نفتی رو روشن میکنم و به تاریکی شب فکر میکنم پاندون ساعت دیواری بدون خستگی خودشو چپ و راست میکنه تا جا باز کنه صدا تو تو کورترین افره مغزم فرو میبره من تو عمو سیاهی شب بکر در نادیده ترین نقطه این قانون ای که اگه کسی تو چیزی فرو بره و قرق بشه هیچ جنبندهی توان بیرون آوردنشو نداره جز خودش و من تو شب فرو میرم با هر با تو چپ و راست شدن پاندول ساعت دیواریمون من همچنان به شب فکر میکنم به این فکر میکنم که هرچی شب عمیقتر و هرچی به تعداد آدم این کوچه که به خواب میرن اضافه میشه من آرومتر میشم از وقتی یادمه همینطور بودم شبا آرومتر بودم نمیدونم چرا از اینکه منو با جود مقایسه کنم ناراحت نمیشم حتی لبخندیم تقدیمشون میکنم مرشن که جغ معمولا به شون بودن معروفه، اما شون بودن لقبیه که منطق داره به جغ دادن بگه نر آدمی که منطق نداره و دلش به امور زندگیش حکومت میکنه امکان نداره به یه موجود شب بگیشون بگی شون شب نیستن اونا گرفتار شون تو شب آشقتر شاعران شاعرتر و بیچارها بیچارتر میشم احتمالا حضرت عجلم چندان علاقهی به گرفتن جون شبنشینا نداره چون اونا نه از داسش میترسن نه از مردنش مرگم به سراغ کسی نمیره وقتی احساس کنه یه نفر براش تره خورد نمیکنه. اون سراغ اونه که از مرگ حراست دارن و مرگو برای خودشون بزرگ کردن به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که همه مردای بزرگ تو شب خورد شدن و فرو پاشیدن عشقا و خیانتها، فتها و شکستها، سرنگونیا و زربلندیا همه و همه از مادر سیاه و قلیزی به نام شب زاییده شدن من حتی آزارم شهر دوبندم خدا تو توی بیخوابی شبونی بود که فکر خلقت آدم نسرش زد بعد از اون شبم دیگه هرگز آب خوش از گلوش پایین نرفت سرنوشت تاریخ بیشتر به دست اونانی تغییر کرده که رابطه خوبی با این انصور تاریک داشتن مخترها تو شب دنیا را تکنددن دوزده شبانه قارت میکنن ماها تو شب آرامش داری خودم شبا حواس جمتری داره که این رد خوندن نماز شب پیغام و پسگاه میفرسته شب تقدس داره برای من شب تعریف داره برای من تعریف اندوه برای شعور انسانی و شب میشه به رسم شبای قبل و قبل از اتاقم مسیر مسیح تا به درب ورودی منزل برسن منزل آمیز حسن که خودش همیشه دوست داشت امروزگار خطاب بشه به که بعد از رفتن جفتش رو آورده به قرقو رو بحونه گیری از وقتی مولیکوستان تنه رفت یه ضلعاس مثلث رو از دست داد آمیرزا میگفت زندگی مسلسه با سه همسانش نان زن شراب و اگه یه زلش نباشه زندگی میشه مرگ و تازه تو مرگ زندگی خواهی کرد من معتقدم آقاجون آدمی که از دل تاریخ بیرون اومده تا قبل فرنگ رفتن من کارمند تحریریه بود و به قول خودش خود خودمقدار عمل میکرد. اما نمیدونم چی شد که خونه نشین شد. هیچ وقت نپرسیدم. و چون نپرسیدم هیچ وقتم نفهمیدم. خونه پدری بنده که من توش سکونت دارم اولین خونه از انتهای بومبست کوچه است. کوچه یه کوچیکی به وسعت تموم جنگلای دنیا به عمیقی و عوغیانوسا. آرامش چمن ها به قذب و زلزله به دلچسبی بوی عطر خوش زنونه و بوی تند سیگار و عرق مردونه من تو انتهایی کچه بومبه است تکیه به دیوار آخرین نخ سیگار فرنگیمم آتیش میزنم و چشمی دوزن به ابتدایی کچه به خیابون به اون درخت سر و اونور خیابون و مردم طبق برنامه هر شبمون برای همدیگه و به احترام همدیگه دستی بلند میکنیم و سلامی ارزیم تا بدونم و بدون زنده و زنده هست مثل تک تک مردم این کوچه نفس میکشم و نفس میکشه هم نفس با آدم های این کوچه صدای زنگ ساعت برمیگردون من از ته کوچه خلوت و خاموش بمب است. به اتاق شلوغ و روشنم که همچنان میسوزه فتیله نفتی فانوس یادگار مولک و سلطنه و دود حاسن از سوختنش میرخصه تو هوا وقتی که چشش از پشت پنجره به ماه میفته <تصفيق> وقت خوابه گایی فکر میکنم که باید خوابید خوابید تا درد بیدار بودن رو نکشید چشه رو بست تا خیلی چیزها رو ندید باید مثل سر اون طرف خیابون بود راوی آدما، کوچه زندگی ها راوی شکست ها و پیروزی ها راوی بزرگ شدن ها و از دست دادنا و راوی رسیدن و نرسیدن ها و حالا نزدیک صبح و من شب نشین هنوز نخابیده باید کوک کنم شماتی ساعتمو به وقت صدای گذاشتن سوزن گرمافون آقا جون روی صفحه همیشه گیش. و باید کک کنم شماتی ساعتمو به وقت همون زمانی که شاعر می‌فرماید، صبح است، ساقیا ها قدهی پر شراب کن دور فلک درنگ ندارد شتاب کن کار سواب باد پرستیست حافظا برخیز و عزم به کار ثواب کن تا قبل از خون آواز سر بده داریوش خان رفیعی یارم گریفت کالمشان یارم گریفت کالمشان نه عزیز دیر یار نه شیرین دیر یار یو کوچاشازده سلام تو چه شازده من خوشاینام پسر مامان مهین ما داریم که این توچه زندگی میتونیم باشه اومدم بجام چه دوستان همه نظر شما رو بدونیم. درباره آدمای توچه درباره نوشته ها، درباره شدا ها درباره زمان چه چقدر به باشیم هسته هفته حتی درباره ها رو منم بگیینم بجین چه چقدر خوب اجرا میتونم پش لطفا نظرتون رو به بخ... خانومی بجین این بالا تو دزستیم. خوشتیم و شاجه بتون دفت چه بگم؟ ما جمعه بعد اولین قشمت تا پخش میشه تو این مدت از مدت خوشت نوشتین تیم نوشنده ها توچه شاجده برشش میتونه بعد یکی از اون خوباشو؟ باشون تیم شده براتون ایدار میتونه راستی از نظر بدی گوه میدم که بزردونه مامانم دست نمیده خدافش توچه شاجده نمیشه بعضی وقتا حق کاری میکنی نمیشه که نمیشه گفتم بیش خودم گفتم من که عاشقش نمیشم علکی که نیست کلی کار کردم با دست و دلم که یهویی یه هوا ورش نداره و بلرزه تا به چشمون خون رسید خودشون نبازه اون وقت همه چی از یادش بره و ای خراب کنه. داریم زندگی میکنیم بیدر نسخ. چه کاری آشقیت پاک خون بالا خونشین که چی تا خار به پاش بره دنیامون بشه قط گوتی که تا نگاه کنه بگیم ماه و پروین بیان جلوی چشاش نوکری عاشقی کدومه پسر سرمون به کار و زندگیمون گرم بود و آسه می رفتیم و آسه رفتیم. تا یه وقت گرده شاخ موند تو رو که دیدم فهمیدم دلو دادم رم دیگه این دل واسه ما دل نمیشه من این جا بود تو روبروی من انگار چشمات مرکز دنیا بود منو میکشید و تو خودش قرب میکرد به قول قدیمی ترا انگار چشات سگ داشت انگار آهن روا داشت چشمات انگار که چشمات شراب ناو همه چی قشنگ شد عشق همین جوریه دیگه یهو میاد بزرگ شدن میگن عاشقی همین جوریه بزرگت میکنه اونایی که میبینی کوچیک میشن کنار هم عاشقی بلد نیستن گوش کن همین همین ساده است ما آدماییم که پیچیدش میکنیم اگه دلت گیر شه میمونی و بزرگ میشی حالا میگم هرچی دلتون بیشتر گیر کنه حالتون قشنگ دنیا ارزش نداره اگه دلتون گیر مکنه نفسی که بدون عشق از سینه بزنه بیرون نفس نیست سم خالصه که میره تو هوا و همه جا پخش میشه همه گیر میشه بی دلبری و عشق میره پس توی خونمون قایم میشه حالا دلبرم عزیزکم بیا من و تو نفس بکشیم و عشق بدیم به هوا شاید این بوسه ها همه گیر بشه زمین جای زندگیشه شاید یه بار دیگه بشه این دنیا رو اسمش دنیا مزارش. که تو این دور و زمونه چشش شو هم بذاره ایچی چیزی خواب بینم که ماهی شدم جای دستام بالو و جای پاهم دوم دارم توی اقیانوس سیاهی شنام میکنم و پیش میرم جای شش آب شوش در بردم و چشم دو طرف سرم قرار گرفته چقدر عجیبه اینجوری به دنیا نگاه بلا و پایین اطرافم پر از آب سرده با خودم فکر میکنم وقتی داشتم دستامو از حلقه آستین لباسم در میآوردم تا خودمو بچپونم زیر پتو مطمئنم که هنوز آدم بودم از که این شد اصلا چجور ماهی هستم وقتی ندونی چی هستی و چه قدرتی داری مواجهه شدم با دنیا خیلی سختتره. احساس میکنم پلک چپم میپره خندن میره من یه ماهیه ماهی که پلت ندارم یه،, یه،, یه دسته ماهیه عجیب از کنارم میگذرم توی صف ابوزن داد میزنم آهای میشه من باشه ما بیام جای صدا حباب از دردم بیرون کرد یکی از اونا برمیگرده و با تحجب نگاه میکنه بعد با عجله همشون با هم دور میشن حتما زبونم رو نفهمیده هرچی باشه من تازه ماهی شدم نمیتونم قشنگ به زبون اونا صحبت کنم سردمه سردمو و بدن عجیب عادت ندارم یادم باشه وقتی بیدار شدم خوابم رو برای تعریف کنم بگم که چقدر ترسیده بودم بگم که ایشتی زبون من رو نمی فهمید بگم که اینه ای اینا رو ولیش کنه سن. خدا کنه وقتی بیدار میشم دست و هم هنوز سر جاش باشه از همین مهمتر تو زبون من رو بفهمید تو که نیاکش تو ما یومان ما یکی به که نیاکش اندو زمانی که نباشی اندو ها زمانی که نباشی آغاز نفسه تو و و صبح نشا بود از چشم تو و جشن تو و حجره فیروز تراشی